باید خاطرم باشد که او خیلی جوان است. یک دختر تمام عیار است که باید به او فرصت داد. سرتاپا شور، اشتیاق و سرزندگی است. جهان برای او جذاب و فریبنده است. مکانی پر از شگفتی، راز و لذت است. وقتی یک گل جدید پیدا می کند، از شدت شوق نمی تواند حرف بزند. باید آن را نوازش کند، در آغوش بگیرد، ببوید، با آن حرف بزند و اسامی دوست داشتنی روی آن بگذارد. این دختر دیوانه رنگ هاست، سخره های, ماسه های زرد رنگ، خزه های خاکستری، شاخ و برگ های سبز رنگ، آسمان آبی، مروارید سپید دم، سایه‌های ارغوانی روی کوه ها جزیره‌های طلایی رنگ که در دریاهای قرمز رنگ غروب خورشید ورند ماه رنگ پریده‌ای که در قاب تکه تکه ابر ها شناور است و ستاره‌هایی که مانند جواهر در فضای بیکران میدرخشند. تا آنجا که می‌دانم هیچ کدام از آنها ارزش خاصی ندارند ولی همین که دارای رنگ، زیبایی و وقار هستند برای او کافی است و با دیدن آنها، هوش از سرش میپرد. اگر هر بار میتوانست چند دقیقه آرام باشد و حرف نزند، جذاب و تماشایی میشد. در این صورت می توانستم از تماشای او لذت ببرم. حتما میتوانستم، چون، دارم به این نتیجه میرسم که حقیقتا موجود زیبایی است. لاغرندام، باریک و بلند، خوشترکیب، چالاک و برازنده. یک بار که روی یک تخت سنگ ایستاده بود، سرش را به عقب کچ کرده، دستانش را سایبان چشمانش نموده و پرواز یک پرنده در آسمان را تماشا میکرد. فهمیدم موجودی زیباست. ظهر دوشنبه او به همه چیزهایی که روی کره زمین وجود دارد و من می شناسم علاقه دارد. من نسبت به برخی حیوانات بی تفاوت هستم ولی او اینطور نیست و به آنها علاقه دارد. هیچ تعصبی هم در مورد آنها ندارد و بینشان تفاوتی قائل نمی شود. به همه آنها اهمیت می دهد. از نظر او همه حیوانات، گنجهای ارزشمندی هستند و هر حیوان جدیدی را با آغوش باز میپذیرد. وقتی آن برونتوساروس، نوعی دایناسور قولپیکر به طرف خانه آمد، آن را به چشم مایملک خود نگاه میکرد، ولی آن حیوان برای من یک مصیبت عظیم بود. همین مورد نمونه خوبی بود که نشاندهنده عدم تفاهم بین ما بود، و نشان میداد نگاه ما به دنیا و همه چیزهای آن یکسان نیست. میخواست آن حیوان عظیم و جسه را رام کند. من میخواستم آن را آماده موتنش کرده و از خانه بیرونش کنم. ولی او معتقد بود که میتوان با مهربانی حیوان را رام و آن را به یک حیوان اهلی تبدیل کرد. گفتم یک حیوان با هفت متر ارتفاع و 26 متر طول مناسب نگه داشتن در خانه نیست حتی اگر حیوان بی آزار بوده و نیت بدی هم نداشته باشد ولی می تواند روی خانه بنشیند و آن را له کند چون از چشمانش میتوان فهمید که گیج و سر به هواست هنوز دلش می‌خواست آن حیولا را داشته باشد و نمی از این خواستهش منصرف شود. بعد تصمیم گرفت سوار آن حیوان قولاسا شود و مناظر اطراف را تماشا کند. این حیولا یک دومه بلند نه ده متری داشت که مانند درختی روی زمین افتاده بود. دخترک فکر می کرد می از آن بالا برود ولی اشتباه می‌کرد. وقتی به قسمت شیبدار دوم حیوان رسید، چون خیلی لیز بود، سر خورد و پایین افتاد. نزدیک بود به خاطر کسی جز من به خودش آسیب برساند. آیا حالا چیزی او را راضی می کرد؟ نه، هیچ چیزی جز اثبات علمی مسائل او را راضی نمی کرد. فرضیه های آزمایش نشده مورد قبولش نیستند، البته قبول دارم که کار درست همین است. این کارش برایم جذاب است و حس می کنم مرا تحت تاثیر قرار می دهد. فکر کنم اگر بیشتر با او باشم مثل او می شوم و نظراتش را میپذیرم. خب، درباره این موجود قول پیکر نظریه دیگری داشت. فکر میکرد اگر بتوانیم این حیوان از این مجسه را رام کنیم و با آن دوست شویم میتوان آن را در رودخانه قرار داد و به عنوان پل از آن استفاده کرد. وقتی حیوان را به اندازه کافی رام کرد لااقل آن ای که مورد نظرش بود فرضیش را امتحان کرد ولی شکست خورد. وقتی حیوان را در جای مناسبی در رودخانه قرار می‌داد و به لب ساحل برمیگشت تا فرضیهش را امتحان کند و از روی آن رد شود حیوان نیز از آب خارج می‌شد و مانند یک تکه تک کوه اهلی شده به دنبالش راه می‌افتاد همان کاری که همه ی حیوانات اهلی انجام می‌دهند سهشنبه، شنبه چهار شنبه پنج شنبه و امروز همه این روزها بدون دیدن او سپری شدند برای تنها ماندن زمان زیادی است ولی تنها بودن بهتر از این است که انسان را نخواهند جمعه باید یک همصحبت داشته باشم فکر کنم برای همین ساخته شدم برای همین با حیوانات دوست شدم حیوانات جذاب و معدب هستند و خلق و خوی مهربانی دارند. هیچگاه بد اخلاقی نمی کنند و وقتی با آنها هستی حس نمی کنی که مزاحم هستی. به تو لبخند میزنند و دم تکان می دهند. البته اگر دم داشته باشند. همیشه آماده سر و صدا و بازی کردن، گشت و گذار یا هر چیز دیگری هستند که شما بخواهید. به نظرم، باید موجودات خوبی باشند این روزها اوقات خوبی داشته ام و تا حالا احساس تنهایی نکردم تنها و بیکس نه نباید اینطور بگویم چون همیشه دسته ای از حیوانات دور و برم هستند گاهی آنقدر زیادند که به اندازه چهار تا پنج جریب از دشت را که نگاه می‌کنی فقط حیوانات هستند تا چشم کار میکند فقط حیوان میبینی و نمیتوان آنها را شمرد وقتی روی صخره ای که آن وسط قرار دارد میایستی و به آن همه پوست حیوان نگاه میکنی انبوهی از خزهای رنگارنگ رنگ و خالدار میبینی که زیر آفتاب درخشان با تندی و چالاکی میرقصند و شادی میکنند و انوار طلایی خورشید بر خطوط بدنشان میتابد و همچون چین و شکن امواج دریاچه به نظر میرسند. تو تصور میکنی که میان دریاچه ای, ای، اما میدانی که دریاچه نیست. وقتی طوفان پرندگان مهاجر و گرد باد بالهای چرخنده ای آنها شروع میشود و آفتاب به پرهای آنان میخورد، درخششی از تمام رنگهایی که میتوان به آنها فکر کرد، برمیخیزد. نوری که چشمها را خیره می کند. با حیوانات بسیار سیر و سیاحت کردیم و بیشتر جاهای دنیا را دیدم تقریبا همه جای آن را به همین خاطر فکر می کنم من اولین مسافر دنیا هستم و تنها مسافر آن وقتی با آنان در حال راه رفتن هستیم منظره با است چیزی که مانند آن هیچ جای دیگری وجود ندارد برای راحتی خودم سوار یک ببر یا پلنگ میشوم زیرا پوست نرم و کمر منحنی دارد که کاملا اندازه من است برای راحتی خودم سوار یک ببر یا پلنگ میشوم زیرا پوست نرم و کمر منحنی دارد که کاملا اندازه من است علاوه بر این حیوانات بسیار زیبایی هستند ولی برای مسافتهای طولانی یا دیدن مناظر دوردست سوار فیل میشوم با خورتومش مرا بالا میبرد تا سوارش شوم ولی خودم میتوانم پایین بیایم وقتی آماده اتراق میشویم فیل مینشیند و من از پشت آن سور میخورم و پایین میآیم همه ی حیوانات و پرندگان با هم دوست هستند و در هیچ موردی با هم بحث و مجادله نمی کنند. همه گی با هم و با من حرف می زنند. ولی احتمالاً به یک زبان خارجی صحبت می کنند. زیرا حتی یک کلمه از حرفهایشان را نمی فهمم. ولی وقتی من با آنان حرف می زنم می فهمند. مخصوصاً سگ و فیل، این دو حیوان شرمنده ام می کنند چون نشان می دهند که از من باهوشتر هستند. ولی من میخواهم خودم در رأس باشم. تجربه اصلی باشم هدفم این است. برخلاف روزهای اول که چیزی نمی‌دانستم حالا چیزهای زیادی یاد گرفتم و دانا شدم. روزهای اول نادان بودم در ابتدا نادانی آزارم می‌داد زیرا هر چقدر هم نگاه می‌کردم آنقدر باهوش نبودم و تجربه نداشتم که بدانم آب چه موقع سر بالام رود. ولی الان دیگر فهمیدم بارها و بارها تجربه کردم، و حالا فهمیدم که آب سربالا نمی روید، مگر در تاریکی. بهترین راه برای اثبات مسائل تجربه کردن آنهاست. در این صورت است که به حقیقت آنها پی می برید. اگر تنها به حدس و گمان و فرضیات تکیه کنید، هیچگاه دانا نمی شوید. بعضی چیزها را نمی توان درک کرد، ولی با حدس و گمان هم نمی شود به آنها پی برد. نه، باید صبور بود و به تجربه کردن ادامه داد تا پی برد به راحتی توان به همه چیز پی برد. این گونه زندگی کردن زندگی را دلپذیر و دنیا را جذاب می کند. اگر چیزی برای کشف کردن وجود نداشته باشد، دنیا و زندگی آور و بیهوده می شود. حتی تلاش برای فهمیدن و به نتیجه نرسیدن به اندازه تلاش برای فهمیدن و به نتیجه رسیدن جذاب است و چیزی بیشتر از این نمیدانم. تا زمانی که راز آب را کشف نکرده بودم، پیبردن به آن برایم لذت بخش بود. ولی وقتی به راز آن پی بردم، تمام حیجانش از بین رفت و احساس کمبود کردم. از طریق تجربه پی بردم که چوب، برگ خشک و پر پرندگان و بسیاری از چیزهای دیگر روی آب شناور می شوند. بنابراین، بر اساس این شواهد می توان گفت که صخره و سنگ نیز روی آب شناور می شوند و باید آن را قبول کرد. زیرا هیچ راهی برای اثبات آن وجود ندارد. ولی باید راهی پیدا کرد و این راه جدید برای اثبات مسئله شما را به حیجان خواهد آورد. از طرفی فهمیدن آنها ناراحتم می کند. زیرا، وقتی مسئله برایتان روشن می شود هیجان آن از بین می رود ولی من حیجان را دوست دارم. در ابتدا سر در نمیآوردم که برای چه خلق شدم؟ ولی الان فکر می کنم برای کشف اسرار این دنیای شگفت آفریده شده ام به همین خاطر خوشحالم و از خالق جهان سپاسگزارم فکر می کنم هنوز چیزهای زیادی برای فهمیدن وجود دارند امیدوارم اینطور باشد میدانم که با صبر و حوصله و گذشت هفته ها و هفته ها می توان تجربه کسب کرد امیدوارم اینطور باشد. وقتی یک پر را در هوا بالا میاندازی در هوا به حرکت در میآید، دور میشود و از دید انسان خارج میشود. ولی وقتی یک کلوخ را بالا میاندازی چون این اتفاقی نمیافتد و پایین میآید. بارها و بارها امتحان کردم و همیشه هم همین اتفاق میافتد. در شگفتم چرا؟ البته که کلوخ هم پایین نمیآید ولی چرا اینطور به نظر می رسد؟ شاید به خاطر خطای دید باشد منظورم یکی از آنهاست ولی کدام یک نمیدانم شاید پر شاید هم کلوخ نمیتوانم ثابت کنم کدام یکی فقط میتوانم نشان دهم که یکی از آنها اشتباه است انتخاب با شماست. با نگاه کردن فهمیدم که ستاره ها تا ابد وجود ندارند. بسیاری از ستاره های زیبا را دیدم که زوب شدند و از آسمان پایین افتادند. اگر یکی از آنها می تواند زوب شود، پس این اتفاق می تواند برای همه آنها رخ دهد. از آنجایی که همه آنها میتوانند آب شوند، پس همگی میتوانند همزمان در یک شب زوب شوند و از آسمان پایین بیفتند. میدانم که این فاجعه اتفاق خواهد افتاد. میخواهم هر شب زیر آسمان بنشینم و تا آنجا که میتوانم بیدار بمانم و به ستاره ها نگاه کنم تا آن نواحی چشمک زن را در ذهن خود حک کنم، تا بعدن وقتی آب شدند و از بین رفتند، بتوانم با قوه تخیلم آن ستارگان دوست داشتنی را به آسمان بازگردانم تا دوباره چشمک بزنند و من هم با نقاب عشقهایم آنها را دو برابر کنم.